قاهره، مصر. 3 نوامبر 1992 میدم کاملا خالی بود. خیلی گرسنه بودم. به شدت احساس می میکردم. از خیلی وقت پیش این احساس همیشگی هم بود. وقتی از پله های هواپیما بالا میرفتم هم این احساس ضعف و ناتوانی با من بود. داشتم به برلین میرفتم. از دو سال قبل که دیوار مشهور برلین سقوط کرده بود، نام این شهر را در لیست شهرهای قرار دادم که دوست داشتم از آنها بازدید کنم اما حالا که فرصتش دست داده بود هیچ هیجانی برای سفرم نداشتم سفری که تا چند دقیقه دیگر آغاز می شود. دیگر هیچ اشتیاقی برای گشتن و کشف زیبایی ها و اسرار این شهر نداشتم آنچه در آلمان منتظر من بود کشف حقیقت زندگیم بود حقیقتی که بیشتر به خواب شبیه بود تا واقعیت این سفر بدون هیچ گونه آمادگی قبلی. یا مقدماتی به واقعیت پیوست و قرار بود حقیقت زندگیم را که بر پایه یک دروغ بزرگ بنا بود برایم روشن کند. روی سندلی نشستم و کمربند ایمنی را محکم بستم. سرم را در بالشتک سندلی فرو بردم و چشمهایم را بستم. نمیخواستم به اتفاقات گذشته فکر کنم، اما آن حوادث با اصرار مرا به سوی خود میخواند. در میان سر و تیکاف هواپیما صدای آژیر آمبولانس در گوشم زنگ میزد. آمبولانس جلوی در خانه ما توقف کرد. پرسنل اورژانس درهای اتومبیل را گشودند. من پشت سر برانکارد حامل مادرم میدویدم. عمو آدم در حمل برانکارد به اورژانسی ها کمک می‌کرد. همگی به درون آمبولانس پریدیم و کنار مادر بیهوشم نشستیم. های قاهره در مسیر رفتن ما به طرف بیمارستان نه تنها هیچ کمکی به ما نمی‌کردند بلکه با شلوغی و ازدهام زیادشان راه رو طولانیتر هم کرده بودند جلوی در ورودی اورژانس بیمارستان قصرالاین او را از من جدا کردند من را با سنگدلی تمام مقابل آن در سفید نگه داشتند تا دیگر نتوانم او را ببینم دستور دادند همینجا منتظر بمونید آخرین چیزی که به من گفته بود را به یاد آوردم. چیزی بین عذرخواهی و تمنای بخشش بود که با عجله بر زبان میآورد و بعد از آن پاهایش دیگر برای ایستادن یاری نکرد و روی زمین افتاد صدایش کردم جواب نداد حرفهای قبل از بیهوش شدنش در گوشم میویجید دوباره صدایش کردم جواب نمیداد فریاد کشیدم. از آن جیغهایی که شنیدنش در آن امارت اشرافی عادی نبود اما آدم با چنان سرعتی از بله های ساختمان بالا آمد که از سن و سالش بعید بود با عجله خود را برای کمک رساند مادرم که از شنیدن سؤال من مبهوت شده بود بیهوش روی زمین افتاده بود اون را به بخش های ویژه میبریم بهش شکل وارد شده پشت همان در سفید که اجازه عبور از آن را به من ندادند در گوشهای منتظر ایستاده بودم تا اینکه فرید از راه رسید از امو آدم خواسته بودم با او تماس بگیرد در چهره دوست داشتنی و مهربان او آرامشی را که از صبح از دست داده بودم دوباره باز یافتم به طرفش دویدم و بیتوجه به نگاه های افرادی که آن اطراف بودند خودم را در آغوشش انداختم احساس آرامشم در آن لحظه مرا به گذشته ها برد به یک روز درخشان از دوران دانشجویم آن زمان من دانشجوی سال آخر دانشگاه آمریکایی قاهره بودم خوب به یاد دارم آن روز چه لباسی پوشیده بودم شلوار جین و پیراهن سفیدی که ترهایی به رنگ آبی روشن داشت با فرید برای تماشای نمایش جولیوس سزار به سالن آمفیتاتر ایوارت رفتیم با اینکه تقریبا نصف سالن خالی بود ما در ردیفهای آخر نشستیم آن روز درست وقتی مارک آنتونی سخنرانی مشهورش را آغاز کرد فرید برای اولین بار احساسش به من را در گوشم زمزمه کرد دوستت دارم لیل، لیلی روی یک جفت صندلی در سالن انتظار بیمارستان نشستیم. شروع کردم به تعریف کردن همه ماجراهای آن روز. از دیدار آن مرد آلمانی تا بستری شدن مادرم در بخش مراقبت‌های ویژه. همه چیز را از اول تا آخر برایش تعریف کردم. داستان روزی که با استرس و اندوه آغاز شده بود و اکنون در کنار فرید و با آغوش او همه آن ها محف محو شد الان و بعد از آن جریان خوب که فکر می‌کنم به یاد می‌آورم وقتی ماجره ها رو برایش تعریف می کردم حالت چهرش کاملا ثابت بود من بیوقف حرف می زدم. وقتی حرفایم تمام شد او ساکت بود رو به من کرد و با لحنی منطقی که من نمی توانستم ردش کنم گفت همین الان میورممت خونه فایده ای نداره اینجا منتظر بمونی. صبح برمیگردیم صبح برگشتم و روز بعد نیست روزها میگذشت و تنها اما آدم بود که هر روز به دیدن من میآمد فرید دیگر آفتابی نشد. با مادرش حرف زدم. جواب همیشگیش این بود که سر فرید در محل کارش یعنی وزارت خارجه حسابی شلوغ است. دو روز بعد مادر آینده ام این را هم با آن حرف همیشگی اضافه کرد که فرید سعی کرده با من تماس بگیرد اما گویا من ع موقع خانه نبودم. پنج یا شش روز گذشت و مادرم همچنان در همان حال بود. پزشکان فقط یک حرف را تکرار میکرد. اینکه او در یک شوک روانی به سر می برد و وضعیت جسمیاش کاملا خوب است به اتاقی در بخش عمومی منتقل شد و من صبح و شب کنارش بودم نمیدانم چند روز گذشت تا بالاخره تکانی خورد رو به من کرد و چند کلمه ای حرف زد تو همه زندگی می اشک از چشمانش سراری شد اشک با اشک من مسابقه می دادند. دستش را گرفتم خم شدم و با مربانی در آغوشش گرفتم سرم را که بلند کردم دیدم با نگاهی که ندامت و ملامت هر دو در آن موج می زد به من مینگرد. در آن لحظه بیشتر از هر چیزی احساس کردم این بانوی بیمار افتاده روی تخت را رو به شدت دوست دارم. مطمئنم کرد که همه چیز خوب است. به خانه برگشتیم. اما با هم حرف نمی زدیم. فکر می کنم هر دو می ترسیدیم. حرف زدن فقط اندوه را بیشتر می کرد. سعی کردم با فرید تماس بگیرم. الان به شدت پشیمانم چقدر ساده بودم؟ اینکه تا آن حد ضعیف بودم عصبانی ام می کند. چرا متوجه نمی شدم با آن کارها میخواست چه چیزی را به من بفهماند؟ فردا برای نهار بیا پیش ما من و فرید منتظرتیم. تیم دعوت مادرش خیلی خوشحالم کرد چقدر منتظر این شادی بودم؟ آن روز همان لباسی را پوشیدم که فرید خوشش میآمد به شدت مشتاق دیدنش بودم هم میخواستم به خاطر شغلش به او تبریک بگویم هم تصمیم داشتم به خاطر اینکه آن همه وقت از من دور شده بود سرزنشش کنم به مادرم دروغ گفتم گفتم فرید به این دلیل هنوز به دیدنش نیومده که به مسافرت رفته است. آن روز وقتی مادر فرید را دیدم با شغل زیاد در آغوشش گرفتم اشک بی اختیار سرازیه شد خیلی دوستش داشتم چون همیشه با من مثل دخترش رفتار میکرد و دوستش داشتم چون مادر فرید بود کمی حرف زدیم. گفت فرید به زودی میرسد. چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: میخوام درباره یه موضوعی باهات حرف بزنم. بفرمایید. زیاد طولش نمیدم. تو میدونی که فرید همیشه آرزو داشت مثل پدرش و پدربزرگش وارد سیاست بشه. سرم را به نشانه تاکید تایید حرفهایش تکان دادم. بر هر حال دنیای سیاست با خودش شهرت و مشهور شدن هم داره و حتی یک نقطه سیاه در پرونده افراد روی سرنوشتشون تاثیر میذاره فکر میکنم تو این چیزها رو خوب میدونی منتظر پاسخ من نماند. اون چیزهایی که تو برای فرید تعریف کردی چیزهای عادی و معمولی نیستن خلاصه بگم به نظر من دیگه مصلحت نیست که شما دو تا با هم باشین ما آن روز با هم غذا نخوردیم چهره بی احساس فرید در بیمارستان آخرین چیزی است که از او یاد دارم البته بدون شک هنوز به او علاقه دارم هرچند عشق ما به یک رفتار پست و توهین آمیز آلوده شد. اما با مرور دوران دانشجویی و روزهای نامزدیمان هیچ نقطه منفی نمی بینم. برنامه ما این بود که ابتدای سال آینده جشن ازدواج بگیریم. غمگینم اما پشیمان نیستم. من همیشه اعتقاد داشتم که عشق تصمیمی نیست که خود شخص بگیرد. فرصتی نداشتم مرهمی بر زخمم بگذارم. هیلموت دوباره ظاهر شده بود. با می کرد باید حتماً در اولین فرصت به برلین سفر کنم تا از این بلا تکلیف خارج شوم. او زمان سفر مرا تعیین کرد. موافقت کردم و اکنون داشتم به وعدهم عمل میکردم روی صندلی هواپیمای نشسته بودم که مرا به سوی مقصد نامعلومی میبرد چه باسو ممکن بود بیا بیابانی بی انتها باشد. با صدای مسافری که کنارم نشسته بود به خود آمدم میخواست شروع به صحبت کند. آلمانی هستی؟ بوست من سفید بود و موهای تقریبا بوری داشتم. به یاد حرف پدر و مادرم افتادم که به دروغ می گفتند چهرم شبیه مادر بزرگ مادریم است که اصالتا اهل شام بود و سالها قبل به همراه مهاجران شامی به مصر مهاجرت کرده بود. لبخندی زدم و پاسخ دادم شاید.